سلام و درود با شما دوستان عزیز من حسین مختارزاده امروز قصد دارم با ایکیه دوستان عزیزم محسن امینی صحبت کنم امروز 19 آگست 2011 که میشه 28 مرداد 1390 محسن امینی در دا دانشگاه فردوسی مشهد سال 2006 فوقلسانس شو گرفته و بعد به دانشگاه ملبورن اومده سال 2008 و تقریبه هم میشه گفت که امسال قصد داره که دکتراشو تموم بکنه محسن جان جایزه ایتریپل ایر ریسیچ اكسبلسال 2009 رو هم برد و مقالات زیادیم به چاپ رسونده. موزو جان سلام. سلام عزیزم فرخ داد. حالا خوبه؟ حالا باند نسلیم هم. خودت اینجا از تجربات بگو. توی ملبون. سال 2008ومه دید درسته؟ باله باله. ولی این زندگی توی یکشمار خارجی و حالا تویشمار غربی خیلی تجربه جدیدی و متفاوتی هست. من خودم خیلی اینو حالا جو داریم که علاقه داشتن دکترابه خونه و خیلی علاقه مندم به بحث علمیش. پیک دسته از علاقه منم این بود که مثل نم بیام و یکشمار خارجی رو ببینم. خب کسایی بودند و خصوص مثل نخان وادی اینا میگفتند خب همینو میتونی داخل ایران داشته باشی ولی من در واقع علاقه اصلی می بود که بیام و اون نهفیز نیکردن مردم توی. کشورای قاربی امروزی باون با چیزی که به ما میگن و ماش نمی‌دیم رو در واقع تجربه کنند.خب چی میگن آسیزان؟ آه... چی میگن و چی دیدی؟ آره چیزی که توی ایران خوب توی ایران تقریباً میشه گفت دو دسته هستند که سایکنسات با قارب نظر می‌داری یکی از مردم عادی هستند که قارب رو بهش ندیدن و یک از مردمی هستند که خب حالا پیشتر طرفدار دولت و نظام هستند و آنها تقریبا میشه گفت نظر منفی ندارن ولی نظر خونس ها دارن یعنی تحصیل میکنن در مورد صحبت نکنن اه، اه، و آره بقیه هم تقریبا میشه گفت مردم عادی هم خارج از کشور رو بهشت میتونن خواهی چه دیدی داشتی من, من قبل از این که بیام خب مطالعاتی داشن، نه که مطالعه صرف این قضیه، بلکل مطالعه داشن درایه در در وزن نیستند تا خارج از کشور. اخبار کلند تو جر جری اخبار اینجا بودم، ولی همین دیده بهش روند داشتم از خارج از کشور، ولی ولی در واقع می دونستم که بهشی در کار نیست و عرضم بخوادن یک سر ناقصی داره و خوب البته مزایای خیلی زیادی هم داره. و ناقایسش چیه؟ اول از ناقایسش شروب. از ناقایسش شروب هنیم. کلیم یک جمله از اینکه دوستم که باز من که ایران بودم، اون از آمریکا هم داد و صحبت میکرد. حالا اینو به اول کار بگم. این بود که در واقع اگر توی حالا آمریکای یا حالا قرق بگیم در حالت کلیتر، همه ویژگیاشو خوب برد. به سه قسمت تقسیم کنیم. از این سه قسمت نه و دو پنجش تاشو خوب پنجش تاشو بده. این،, این حالا هرکه اون بود اون زمان دوگوش ما رفت و اینجا اینو اینه دیدم حالا اونجا البته آمریکاس نه جا استرالیا است متفاوته حالا ما, ما یک استرلای تو ایران داریم به نام قاره ولی وقتی که با قاره‌یو صحبت می‌کنیم اول میگن please define west first الی مشخصه. آره مشخصه که در directly کجا است؟ کجا استرالیا فرق خودش رو داره؟ گرچه خوب خیلی، شاید بعدا خیلی زیاده مثل مثلا کشورهای اسلامی. ما نمیتونیم بگی مثل ایران و مثل افغانستان یکیه با اینکه مثل همسایه‌هایی مثلا خیلی یکی بودن تا مدتی بشه. یا مثل ایران و چه می‌دونیم عربستان یکیه، سوریه یکیه. گرچه که از دید یک ناظر خارجی همه اونا میلی‌لیسته همه اونا کشورهای اسلامی هستن. اینها همین جا هست. من به طور خاص میتونم در مورد استرالیا نظر بدم بازم همون غذیه از همون, نو... همون سه تا واقعا نادرپنجمش داشت خوبه و پنجمش پدر. باز دوباره اینو بگم که این غذیه خیلی خیلی دیده شخصی بهم میاده. یعنی ممکنه یک فردی که مثلا از من مزخربیتره بگه از سه تاش هشت تاش پدر و پوستش خوبه. و یکی که چی می دونم از من قهربیتره مثلا میگه سه تاش خوبه یا تا ساده ده تاش خوبه. این نه ساده دیگه کدی وقت قلمرو شه شخصی است. حالا مثلاً یه نکته که الان شاید مثلاً یه سری از دوستان که کش می‌دن و برنه ما وقتی شما میگی قرب یه نصیت رولیا که شهرترین نقطه این توضیم دیگه. اری این که خب بالاخره تلیلش این که یک رشته تاریخی داره که حالا ما در واقع بولوک شهرتاش نیم و بولوک قرب این مفاهیم کلمه ویستیالا قربوینا از اون زمان باقی مونده و یک مفهوم مجازی داره تا یک مفهوم در واقع جغرافی جغرافیایی جغرافیای. مثلا الان کره شمالی و کره جنوبی اون کره شمالی میشه خودش هم و کره جنوبی میشه غرب در واقع غرب قر... استایل غربی رو داره به نوعی تبعیت میکنه اه... کالچر و آره کالش رو در... فرهنگ نه اونم هست کالش رو فرهنگ هم هست مثلا سیاسی هم هست مثلا خب خیلی کیش ولی الان اه... سیاسته قاربی رو پیگیری میکنم. مثلاً هند رومان میتونی به لازم سیاستی بگیم قاربیه به نظرم، ولی لازم فرانگیه کشور کاملاً شرقیه یا حتی چین تا حدی. حالا چین باز چون قضیه کمونیستی نیست یک آماده فابت. ولی باز قضیه فرهنگی و این هم هست. باز توی اون یعنی اگر اینجوری بگی که از هر جنبه اینجا کنیم، از هر جنبه فرهنگی نگاه کنیم یکسری کشورها شرقی، یکسری کشورها غربی هست. جنبه سیاسی نگاه کنیم یکسری کشورهای دیگه شرقی، یکسری کشورهای غربی هست. آره می‌تونم جنب بگریم به ملبورن خودمون. <تصفح> مسیرمون توی ملبورن شما گفتی که دوستانت بری گفته نهاد پندرصده مثلاً. خوب آب پیدارسدش بعد اونها. شو باتری چیزی که اینجا دیدی چی بود؟ سختیه. سخته. باتری چیز نبود. یعنی فیزیکی نبود. آره. پیشتر چیزی که منو ازیت میکنه همون عدم وجود اون مهر محبت ایرانی و اون رابطه گرم عاطفی هست که ما تو ایران داریم و اینجا نداری نیست. درواقع خیلی کم رنگ هست. چه باز اینجا هم انقدر انترنشنال زیاده انقدر آدم های خارجی زیاده هست که عملا تو با خود استرالیایی ها خیلی جور نمیشی و قاطی نمیشی نه که نخان شاید برای من شخصا پیش نمیده برای خب پیش نمیده میگم ولی چیزی که دیدم ازشون و از ملیت های دیگه خب باز دوباره همون بعضی شهر قارب میشه ماه آن به خصوص ایرانیا بازم من تو خودش شرقی اینها مثلاً هندیا هم هستن نیپالی هست چه می دونم چینی هست بازم اینو من تو ایرانیا بیشتر دم اون چهفه مثلاً خیلی توسانی که بینشون هست و این واقعا نیست جای دیگه واقعا من نمیشم مردم کشور دیگه خود استرالیا یا واقعیا خیلی کمتر و کشور دیگه تا حدی بیشتر ولی بازم بیرونیا نمی رویم نه واقعا این یک امتیاز یک نکته خیلی خیلی من ازیاد میکنه به ما این من ازیاد میکنه、بره. نم آره نمیتونم نمیتونم مثلاً اگر نه این جو بودن یعنی دوستان هم فکر میکنی این جو بوده بلکه خیر بلکه بالاخره... خیر تجربه که من داشتم این بوده که خیلی من دوست چون متأسفانه متصف... علاوه بر کشور کشور ما یک چیزیه که حق... ملت با یک خیلی آب یک دیده فرار از کشور میام بیرون خیلی یا باز می دیدم که با یک دیده هم می دیده فرار از کشور خارج می شن میان و اصلا اون اولی که وارد کشور خارج می شن اصلا به ایرانی ها دیگه خیلی توجهی نمی کنه و حتی این حس گریزی دارن یه شاید خسته شدن حق می دارن چون با خدای شرط خواست کشور ما ولی من خیلی دیدم که اره اولیش یک مدتی حالت گریزی داشن حتی دوستا خیلی نزدیک خودم اینی هم اطاقیا بودن این هت ولی بعد از یک مدتی میگن که واقعاً معروف بازجویی از روز گارو وس درخیش خو همون جای برگشتن. برگشتن و حتی مثلاً خیلی ابراز علاقه کردن به همون خصوصیات ایرانی و مثلاً چند یک چیزی نهادینه است وجود مادی که با این بزرگ شدیم می میشه کفتش که مثلاً یک چیزی که میشه تحقیرش داد برای هدی حالا باز توانپن بست گم شد حالا از, از موضوع حالا <تصفيق> چیزی که از جدت میکنه بگذاریم توی قسمت هایی که برحال این ملبون به تو داده یا استرالیا به تو داده چی ها به تو داده که ایران نمی داد حالا از لحاظ هم زندگی بگیم هم از لحاظ درس و اینها چی, چی داشت برات که شما قلند شدی اومدیم اینجا <تصفيق> خب بازی این هم خیلی سوال سختی از جنبهای مختلف میشه بهش جواب داد ولی چیزی که من حالا اگه بگم سال قبل در مورد مزیراتش بود در مورد مزایاش بخوام صحبت کنیم آرامش خاطر هست آرامش خاطر به این لحاظ که به این لحاظ که سبکی پیدا میشی نمیخواد به اقتصاد فکر کنی به نحوی رفتن به محل کار فکر کنی به امنیت خوند فکر کنی به امنیت بچه ها و همسر تو خونه فکر کنی و خیلی مسائل دیگه صبح که بالا میشی فقط کافیه و کارت فک کنی و امروز تا صبح کارچی کار کنم فعلا پروژه رو چه جوری پیش ببرم و از قبل میگویی خسته و خلاصه فردا روز بعد یک مقداری باز دوباره می‌آیی به همین قضیه می‌نکی یک مقدار در طول زمان یک نواخت میشه زندگی ولی در واقع این ای بهش هست ولی مزیتش اینی که واقعاً آدم میتونه تمرکز بگیرد رو کارش. من تو ایران واقعاً خودم میگم مشکلی که داشتم چون تو ایران من به نهفته کار تحقیقات بودم. من مثلاً اگر میخواستم 6 ماه تحقیق کنم یک سال بعد در واقع سر باز کارای اضافی رو میکشیدم. چیم دونام از کارهای اداری، از مسائل مختلف تا حتی ترافیک که مثلاً پشتش چرا قرمز میمونی و غیره تا مثلاً بتونی یک ماه تحفیق کنی. بنابراین دیگه اصلاً انرژیی باقی نیم می‌بره آن کسان. در اینجا دقیقاً برای اینست. یعنی سربر مسائل اداری، سربر مسائل استرس‌زایی مثل اقتصاد، امنیت، انقدر کم هست که تو دیگه تمام انرژی زننیت میره برای کار و اون هدفی که برایش اینجا هستی. این یک بیجیه خیلی خیلی مثبتی است. خیلی حال تو این راستا میشه یه روز یک روز از تپیکال زندگی توی اونی بگیم ما، بگیم مثلاً صبح بالا میشی چیز کار میکنی、ام. تا غروب. حالا تیپیکال زندگی من که قضیه به خاطر قاضی بچه داشتن آخرین نیکمی ام. حالا دوست داری؟ اونش در داستان شبی که داری دیگه. آره. داستان پیداری شب تاسو که دیگه و حال. ولی حالا بگیم طریق قبل از دوران احوال پدرشتران این برنامه ها, ها یک مقطعی زندگی معمول تر بود. میگم خیلی تفاوت از زیاد نیست. شاید این حتی یک از جنبه‌های مثبت اگه بخوایم نگاه کنیم به ایران این یک مزیت ایران باشه که هر روز مثل دیروز نیست تقلب. یک روز چه می‌دونم از بوری بانک یک روز تو ترافیک میمونی، یک روز چه می‌دونم مشکل دیگه‌ای پیش میاد و ادمایی که می‌بینی متفاوت هم. ولی اینجا گفتم همه تقلب هم میشه که یکسانه. یک روز معمولا من به این شکل که خوب من تقریبا ساعت 8-8:30 تا 9 ویدئو میشنم و به خاطر ای که شغلم دانشجویی هست خیلن به یک مداری یعنی تاف دارن تو ساعت شروع و اینها و ساعتای نهانیم تا دهانیم می رسن به محل کارم به آزمایشگاه چی جوری می آیم آسان چا؟ نحوه اومدن من حالا باز به شکل طبیعی اینجوریه که من آه از آه قطار استفاده می کنم از مترو استفاده می کنم ولی اخیلی ای که از دوستان مسیرش که ماشین می آره به دانشگاه مسیحش با من یکی هست و لطف میکنه من... سر راه منم سوارش ماشه میشه من یادم میامد که شما با چرخه میامدی آره یک،, یک الان البته هوا سرد هست و... اه... ولی قبلا که هوا بهتر بود شاید مثلا میگیم هشت ماه سال هفت ماه سال بسی که داره چقدر تمبل باشی یا نباشی از چرخ استفاده میکردم دو چرخه حدود هشت کلومتر از خونمون تا اینجا ریکاب میزدم خیلی تفریح و تفریحی که دارم وقت تفریحی، ورزشی خیلی خوبی, خوبی بود آره. و بعد تیک ساعت نه نه هنیم ده حالا بگیریم حتی ده هنیم میام دانشگاه. اولین چیزی که چک میکنم ایمیلام هست و سایت های خبری و بعد به نیو خبر ایران چه خبره به خصوص و بعد شروع میکنم کار تحقیقاتیم را تا تیک بعدا نهاری باشه نهار معمولا میاد. جامعه دوستان که باز همون میگمش در ایرانیا هستن میخوایم و بعد باز تو از ساعت های حدودن شش هفت بعدن هشت بستگی داره چقدر سلام شلوغ باشه دانشگاه هستن و بعد برمیگردم خونه دوباره با قطر و شامی میخوایم ما یک چند ساعتی کنار خانواده با باز فرد تو بله خب نه یه شرکتی که به پدر شدنه درولا مبارکه خیل خیل خیلی خیلی شما پدر شدی ولی یه دفعه دو دوگانه برشید دوگلو خاست خدا دیگه دوگلو شد عرضم به حضورت که این رو چگونه دیدی؟ وحال دانشو بودی؟ وحال اون ذهن که کار داری و درگیری های اینجا هست یعنی چیجوری خودت احساس گردی که ها که الان وقت این وقت بسیدار شدن هست؟ یکی دانشو فرست این یکی دانششو فرستون علاقه هم رده خودش ما انتوسیه میکنی؟ نه بیشتر هیچگاه دعوی بخوام توسیه کنم میگن بذار درسش لام بشه ولی من چون خانمم خیلی خیلی علاقه به بچه داشت و دیگه مسائل سنی و اینا هم داشت یه مقداری بالا می ره افتیه درجیدیم که نتوفاقی افته.allah چه امکاناتی بود یعنی توی مسیر من احساس می کنم که چون یکی دو نفر از مثل خود و باي که تو در دوستان رو دیدم خیلی خریف بی کردن یه ما در اون مسیر رو بر ما توضیم می دی مسیری در واقع که و... و... با که باوری نه باین که مثلا بیمارستانو بیمارستان آره نه خود همون تو اون مسیر تا وقتی که زایمان بشم محسوس کردم خیلی امکانات می دن. دن یعنی از هر یه بیمارستان خیلی آموزش هام می دن که من نشنیدم تو ایران چیزاتو درست. خب یک ویژگی اصلی اینجا نظم هستش که بدون شهر که خب ما دوستان باست تو ایران کمتره حالا میتونیم مقایسه بیم و خیم پیش بیم. فا خب عربت ما از یه قسمت غذیه حالا باز تری رو بخوایم شروع کنیم نارازی بودم. اینجا مشکلی که از پزشک بسیار دت کم دارن. یعنی چیزی که ما توی ایران زیاد داریم و پزشک به بخ... خاطر پزشک عمومی که توی ایران به وفور هست حتی با حدیبی کاری است، اینجا واقعاً جات کلی کم داره. و خب این بود. و این مسئله باعث شد که خب خانم من تا سماهونیم بعد از بازداری. یعنی اون سماه اول که سماه تغییر ریسک پذیر و خطا نکرده. قسمت هست در بچه هنوز به حالت پیدا نرسیده هیچ پزشکی نمیدیدهش. یعنی اینکه این این ما با بیمارستان تماس میگرفتیم که آقا ما وضعیت نیش ریه هتل حالشون نیم میاداره خوب نبود ترجیم داد که دکتر ببینه. ولی می گفتن که برحال باید مدارک تو که فرستادی باید ما تو نوبت می زاریم و معمولا مثلا از هفته دوازده هم سیزده هم که همون سه ماهیگی بارداری می شه نوبتت می شه و همین اتفاق هم افتاد و خب ما دیگه به خاطر نگرانیی که داشتیم ترجیح دادیم که از بزرشک های خصوصی, خصوصی استخاده、هست. کنیم و یکی دوتا بزرشک خصوصی دیدیم و الهم دولا مشکل پیش نیمد ولی میگم این در واقع اون تخیر اولیهشون یک مقداری عذیت کننده بود ولی بعد روال به این شکل بود که در واقع تماس که رفتیم با یک بیمارستان باز از همینجا شروع کنم یکی از بهترین ویژگی‌های اینجا اینه که نمی‌خواد پاشی از این ورbum وربری بر بر بخاطر یک کاری که یه کاغذای کوچیک همه چی با یه تلفن حل میشه همه سرویس‌ها و امکانات از طریق تلفن و اینترنت در اختیار هست و احتمال کلزمه‌ی این چرچیز از هست وجود داره و تلفن زدنی وقت کل فتیم بعد از یک مدتی نامه‌ی پذیرش ما رو بیمارسان می‌اد و اولین قرار ملاقات. رفتیم اونجا و خب خانم های خیلی زیاده بودن بیمارستان عمومی بود و فرض کنین شاید مثلا پنجا تا خانم بودن و در شاید مثلا شاید حدوده هفت هشتا دکتر متخصص در کنار یک سری البته ماماها که شما میتونست انتخاب کنین که ماما ببینده یا دکتر و بعد به مثلا این که واریم میشدی بهش ما یک بسته ای میدادن حالا اون بسته بگذاریم از این مسائل تطبیقاتی از پوشاک بچه بگیریم تا وersen مسائلی که مادر در زمین بارداری نیاز داری یا بعد از متولد شدن بچه وجود داشته تا تحترش های اطلاعات بهی ک مقسمات متفاوت تربيه بچه چجوری باشه، شیردهی بچه چجوری باشه، خود زایمان بچه مثل ترتیب هست، بچه اتفاقاتی برای مادر میخواد توضیح داده شده بود، و از علاوه بر این هر روز اول یک فرماندهی برای اه اه مادر به اطلاع تشکیل می دن، فرمانده پزشکی. و همه چی داخل اون هست، و اطلاع شما که می ده داخل کامپیوتر که شما تربیمی که خیال جام جام جام هست. اینی هر جا بری دیگه با یک اسمت فامیل تومیدی و همه اطلاعات میاد و همه、دم. هر دکتوری که میبیندت بعد از اون نمیدونم داخل همون بیمارستان یا داخل کل استرالیا اونوشو حقیقت نمیدونم بهتناس ما دسترسی, دسترسی, دسترسی داره و همون پرونده سلامتی که توی ایران میگن واقعاً،, واقعا اینجا وجود داره بعد عرضم به خدمتون که ما دیگه به شکل منظم خانمم من بازدید میشد با توسط دکتور هر, هر یک ماه بود میرفتیم هر نقطه‌ای بود در پروندهش ازاق میشد و در چند ماهی حالا به دلیل ارسی خانم من دیابت کردند دیابت بارداری کردند و خب از اونجا متخصص دیابت خانم‌های باردار وجود داشت که خانم من توسط هم یک پزشک متخصص عادی و هم یک متخصص دیابت بارداری ویزیت میشد و در تیه این مراحل قرارهای سونگرافی بود همه اینا تقریبا میشه گفت توی چار پنج ویزیت اول زمانبندی شد و طبق اون زمانبندی انجام شد همه به خاطر بوجود بیماهای اجتماعی همه به شکل مجانی اصلا چیزی به شکل شما هیچ هزینه ای تا به هیچی صفر, صفر. قطع موقع بار داریم فقط ما همون سه ماه اول نه هیچی صفر صفر جالب بود که آشن هر تا یک رسیدی قبضی چیزی همون نداشتن میتونی بگویم خب وقتی که که پاشی بردی و پاشی باره یه حتی یک جایی امضا می‌دونم شاید یکی دوتا بگم. باید、دارم. که شما هنوز با من وارد دانشجوی خارجی اسب میشی حتی از یعنی این جایی اسب نمیشه. من استرالیایی محسوب نمیشم و با بیمه دانشجوی خارجی هم این امکانات وجود داره ولی مسئله کسانی بود که من چه برای اقامت اقدام کردم هنوز نگفتم اصلا کردم. با حالا دولت استرالیا هم اون کارت بیمه اجتماعی رو به ما هم داده. که همه اینها رو می‌تونیم. همه اینارو دیگه داره ولی مسئله نداره. همه اینارو فقط به میدانشیوی هم پشتیبانی میکنه. بعد خب خانمم گفتن وزیر میشد. همه چی خیلی منظمه موسانش ما از دو ماه قبل از سرنگرافی وقت گرفتی شدیه، مشخص خاصه و. هچیزی که میرفتیم ویزیت میشدیم کار خاصی صورت نمیکرد خیلی جون اهل همدل مشکل خاصی نبود و هفتهای هرچی برو با آخر میرفد در واقع تعداد, تعداد ملاقاتها بیشتر میشد مثلا اول هر هفته یکبار بود بعد از شش ماه فهم کردم هر دو هفته یکبار شد و مثلا تو نهماهیگی توی برش از هشمهایی که بود هر هفته یکبار شد و بعد خب از خیلی دکترها واقعا اهمیت میدادند مثلا چون خانم من دقلو داشت باست هر هفته قلب بچه رو با دستگاه های خاصی توی قسمت دیگه برای منیترینگ بازدید میکردن و خورسه خیلی خوب بود و روز آخری که ما آخرین قرار ملاقاتمون بود که رفتیم خانم دکتری که ویزید کرد خانم اما گفتش که حد سد که بچه در حال به دنیا آمدن هست و خودش سونوگرافی کرد و خودش ماهینه کرد و جالبیش اینی که اصلا اینجا این نمی‌دونن یعنی کسشان نمی‌دونن کاری که حتی در یعنی مسئول انجامش نیستن رو انجام بدن. مثل اند یک چه می‌دونم یک دکتر متخصص کسشان خودش نمی‌دونه. مثل اند میزش رو دستمال بکشه یا برای خودش چایی بریزه یا هر چیز دیگه. به این ترتیب. و بعد ما از همون جا وارد قسمت متقابل شدیم. یعنی خودم می‌مرسان خیلی سرف. اصلا قسمت داشت برای این این شماران دوباره من را میداده. اون که حالا آره نه منظورم اینه که ما با این که در واقع قرار عصیی عمل مثلاً فرض کنید که چهار روز دیگه بود ولی ما امروز که داشتیم دکتر دکتر رو فهمیم الان بعد امروزیم. آره و بعد اصلاً مجبور مستقیم وقت دند. مثلاً در عرض 20 دقیقه شد کمتر یک روب و دسته تلفن قرار عمل گذاشته شد بعد دو ساعت بعد. آوران، آوران. آره و بعد مستقیم خانوم ما من منتقل شد به بخش عمل و دیگر افتی تو پروسه عمل حالا سلامتی. حالا یه بقیه هم که دیگر شبانه میذاره به خواب. آره خب و... نه حالا من نم... برای اون قسمت از عمل و بعد از کافی توضیح داری بیاری که آره چون ما تهران میگن بیست باز... و دو ده سواد کردیم.、آه. آره <تصفيق> <تصفيق> به هر پایانی برای این مرد داری که نگفتی فقط、باید. همین که شما اشاره کردی این خ... بهترین واقعاً یکی از بهترین چیزاییم بود که به من بونم نبسطم پدر همسر چقدر داشت که برم تو تهران برد و بعد وقتی که رفتم و خانم مامروطون شرایط دیدم فهمیدم که چقدر به وجود من نیاز دارد و چقدر همسرم به من نیاز داشته و این خیلی خیلی این چیزی خیلی نیم میوفت عرضه من شد نه مثلا نیست جاهایی که بیمی می‌شوند خصوصی حالا نمی‌دانم بسیاری قانونی‌گرانی این کار می‌کنند ولی این خیلی خیلی خیلی مزیت بود واقعا دستشون در نه کند و بعدش که رفتم تو مرحله نگهبانی به خودی خانم مسز زاریانو چهار شب نگهش داشتند درسته که من شاید مثل مثلاً تو ایران یک شب نگه می دنند من ابداع ولی خانمها روز دوم به سختی می تونه سراغ بروند ولی شیری میشه برای زتونش هد مرخص کن خیلی بلنده مگه قیل قلم عجوله و بعد پلاستراپ رفتار بسیار بسیار خوبی داشتن و همه کار می کردند یعنی از تراخوش کردن خود بیمار چون در آخر نمی تونه خیلی حرکت کنجهم بده تا به تا و رستگی به خود بچه و در این حالش آموزش به پدر ما داریم یعنی در اون چهار روز که مبودیم هر پرسشی میماد، هر کاری میکرد، از تلخ کردن، از قصد دادن، از چه می دونم کاره مختلفی که برای بچه ممکن است فاصله همام هم کردن، نیم بچه همه اینا رو به ما هم آموزش میدن. به نفعی که مثلا من بعد از چهار روز من خودم میخواد میگم از مادر خانمم میگم <تصفيق> از آنها بیشتر باید بچه هوا را بزرگ کرده باشه چون خودشو نر <تصفيق> و بوفل داریم من بیشتر مثلا میدونم چی, چی کار باید بکنم چه جوری چی کار باید بکنم درسته موزون چند شان؟ دارم فهمیدم 20-25 دقیقه صحبت کرده ایم من خیلی لذت دارم که گوش بدم به سواد آدم داره. واقعا داره بحث جالب میشه. وانتای انشالله میذاریم فکنم در یک دفعه کاملا فقط راجع به خیلی راضی بیاییم از این سواد بکنیم یا در سواد میکنیم. اگه هفته پایانی داری با من اینکه بگی کسی از فرز کنی مزیران بخواد بیاد اسرالیا یا آیا واقعا پیش نات میکنی با توجه به تجربات اگر بخوام که اگر کوتاه بیاید اگر بخوام احساسی بگم میگم نه چون ایران دوست داره ولی اگر بخوام منتقدی بگم و بخوام در واقع به زندگی خود فرق بکنه میام اره واقعاً واقعاً زندگی لذت می‌بره خیلی جالب تیوالی می‌تواند خیلی متوجه کرد لطف کنی که وقت داشتی خدا